یہ جملے از نعج البلاغه عرض کردیم اون جمله این بود که امیرالمومنین سلام الله علیتون ازل بلاغه می فرماید خمستون لو غرفتم علیھا ابا فلعل لکان شاید دین دور لکن لدال که اهل لا چیزه اگر به تعبیر من اگر بر شطرها سوار بشدید و دور شهرها و دیار بگردید برای اینکه این پنج چیز رو به دست بیارین ارزش داره. سوار شطور بشین و تو به شهرها و بیابونها بگردید شاید این پنج چیز رو گیر بیارید این ارزش داره که این قضامت بکشید اون پنچیز چیه؟ یکیش اینه لا یرجوان نه احدون منکم الا ربه امیدتون فقط به خدا بود یک دومیش که غلا یخافن الا زنبه. فقط از گناه بترسه از هیچی دیگه نزد. خیلی خوب قرآن ستا دیشت باشد ما سر همین یه جمله بودیم یه مقلال یه حرف دادیم چیزای مختلفی گفتیم یادم رفتم یادم رفته. ولی حالا اینو برای اینکه که امشم هم یه خورده ادامه بدیم اینو هم یه خورده سکمیلش می کنیم لا یرجبن احدون منکم، الا رفت امید نداشته باشد مگر به خدا بزر. مسلم متا تو آدم به هیچ چیزی و به هیچ کسی امید نبر. مگر دوستو این مطلب چون که چبهای قبل از تعبیلی عرض کردین اساسش یک کلمه است. و اساسش این است که تمام عالم هستی از مبدأ تا منتهایش و تمام حرکات و افعالی که در این عالم از هر چیز و از هر کس صادر میشه همه به خواست خدای تعالی این یک کلمه رو باید باور کرد اگر کسی این یه دونه کلمه رو باور کرد اون وقت لا یرجو بن من عهد منکم الا رب دیگه تصورش براش آسان میشه انسان به چه چیزهای امید داره به یه چیز به دو چیز به صد چیز به هزار چیز نه همجور امید امید به سلامتی خودم دارم امید به پولم دارم امید به مقامم دارم امید به رفیقم دارم امید به پدر و مادر و بچم دارم امید به خانم دارم امید به زندگی دارم سرفا امید بی خود معطلی تمام اینهایی که دل به او بسته ای همه اگر اثری داشته باشند به خواست اوست تمام دلها به دست اوست هر کسی بتواند به تو خدمتی بکند او باید بخواد تا بتوانید به تواند خدمت بکنم. هر کسی بخواد به تو زرری بزند او باید بخواد تا تو ب... به تو زرر بزنه آیا بدون خواسته او ممکنه این مطلب قل اللهم مالك المول توت <تصفيق> الملک من و تنز الملک من و تو ازد من پشا و تو زل من پشا به یاد کل منحسرن خیر به دست تو <تصفيق> این نکه علاقه پس اگر همه چیز به دست او و به خواست او به چیچی امید داشته باشن اگه او بخواد میشه اگه نخواد نمیشه که اگر تمام عالم جمع بشن بقدر یه سر سوزن بخون به کسی زرر بزنن اگر او نخواد میتونن نه اگر بخواد نفعی برسانن میتوانند نه، نمیتوانن. او خواسته باشه، باید او بخواد. از ازمی شود به این این مطلب اساس و پایه دین و تمام کمالات انسانی که در هر مرتبه و مقامی بخواد برسه به این بسته اگه این کلمه درست شد و باورم آمد تمام کمالات پشت سرش کنم من نیمزه باید کلام مخوام عرض بکنم خیلی پیش ها شاید سه سال پیش همین جا شاید گفته باشم ولی جاش اینجاست که مرتبه میگم جبرایل آمد خدمت رسول خدا و واله عرض کرد یا رسول الله برای تو حدیگه آب بودم مجهدی آوردی گفت برای تو سبر, و سبر. سبر آوردم و بهتر از رزا. بهتر از صبر چیه که آوردی گفت رضا آوردم و بهتر از رضا. بهتر از رضا چی آوردی اخلاص آوردم و بهتر از اخلاص یه هفشده تا از این صفات کمالیهی که به این زودیا گیر کسی نمیاد توش زرمشه اینو آوردم و بهتر ازی بهتر ازی چیه باز فلان و بهتر از او بهتر از او چیه هم ترتیبش هم یادم رفته عددش هم یادم رفته ولی اجمالا میدونم توش توکل کل، ه... توش صبر هست توش قناعت هست توش زهد هست توش عرض می شود به اینکه اخلاص هست و چیزای دیگه خب من فکر میکنه اخلاصو دادم پیدا میکنه زود میتونه رزا پیدا کنه حال رزا مگه به گیر میاد سیغمبر فرمید ما ولا ولا, ولا, ولا باور که خلق خدا نفرد انشان ها و تمام مخلوقات عالم، تمام مخلوقات عالم نمیتوانند به من ضرر برسانند نمیتوانند نقع برسانند مگر بخواست کرد یا یه و ولا یمخه ولا ناسی ولا یم نه اهدی نمیتواند چیزی به من بده یا چیزی از من بگیره مگر به خواست خیلی خوب این معنای توکر اون وقت ملاحظه رو فرمید. نتیجه مثل رو جبریل از میکنه اگه این یک کلمه رو باورش اومد فلا یعمل الا لله ولا یرجو سب الله بلا الا من الله اگر این کلمه رو باورش آمد دیگه نتیجه چی میشه دیگه برای غیر خدا کاری رو انجام نمیده من شر ریا می کنمم میکنم شما یه کاری هستید تو دنیا من ریا می کنم که دل شما را به خودم جذب کنم علاقه شما رو به جانب خودم متوجه کنم خب چی بشه نتیجهش؟ اگه یه وقتی گرفتاری پیدا کردم شما به کمک من کنی اگر یه وقتی محتاج شدم شما به من قرض بدین با امثال اینا. تو هنوز خیال میکنی اینام کار از دستشون برمیان العلم و به ان المخلوق لا یزر و ولا ینفع ولایتی ولایمن فاذا كون العبد ذا ذلك فلا يعمل إلا لله فقط برای خدا کار میکنه چون به غیر او امیدی نداره اگر کسی هم بخواد به من کمک کنه باید به خواست او و به دستور او و به امر او همه وسائطاً همه وسائلا وسیلا کار رس اوست و به قول خودمون و به قول بندی که مکرر میگم سر نف اونجا اون باید بخواهی اگر این چنین شد فلای عمل الا للا فقط دیگه اخلاص پشت سر اینه هست اخلاص پشت سر اینه چون من کردم من که یا بکنم برای چی میکنم دارم میکنم یه آقا کاره ایه از دستش بر میاد نظام هم جلوه بدم کارم رو در نظر ای تو حق باست فرطه اطلاع نداری درک نکردی همین که کارها برز می شود به دست اون تو دعای عوی حمزه این جمله رو داره و به یاد که لا به ید, ید غیره زیادتی و نقصی و نفعی و ضردی فقط به دست تو نه به دست غیرتو زیادی و نقصان من به دست توست نفع و زرر من به خواست توست بنابراین این چنین متربی رو که باور کرد دیگه قهران اخلاص پشت سرش دیگه من برای کی کار بکنه کی چی کاره هست کی میتونه به من نفعی برسانه کی میتونه به من ضرری برسانه قهران اخلاص پشت سرش میاد خب هره من زحمت بیشم اخلاص تحییه کنم مگه تحییه میشه به این ها این کلمه رو اگه باور کردی پشت سرش میاد خود به خود. میاد دیگه تلا یعمل الا للا ولا یرجوسه دیگه امیدش به غیر اون نیست چون هرچی خیره است از ناهیه او. به،, به غیر امید نداره فقط امیدش رو ولا یا خاق الا من الله فقط از او میترسه چه دیگه اگه بخواست ضرار بزنه به امر او و به خواست او و به دستور او اینو نشیجه مطلب و چه نتیجه مهم و چه نتیجه عالی اون نتیجه چی میشه اخلاص پیدا میکنه نتیجه چی میشه آقا میشه اقدمیشه نمیگه یعنی دیگه استنایی به کسی نداره تواضع بیجا در پیش کسی نمی کسی پیشش ارزش نداره عرض کردم اون در... سابقا هم کردم نه منانوسین که دیگری رو کوچک بشورم نه همه و نگام خدا همه دوستان امیر اهل مؤمنین و من موظفم در مقابل همه متواضع باشم ولی کاره ای نیستم اینو باید بلد باشم من موظفم که با شما با صحبت کنم سلام کنم به شما برخوردم نیکو باشه این وظیفه هست این دستوره ولی کم دلم به شما بنده نه به نظرم این قبلی هم گفتم یه لفه میرسه مقامش به اینجا که بیر ابراهیم سلامه به حاله یه ولی شردن تو آتیش؟ جبرائیل میرسه نگه کاری با من داری بخاری. نه تو همی که مثل من گدایی خب این چنین قدرت فکری و قدرت روحی پیدا کنه تو برای جبرائیل هم محصره در کار نیست نظام این فلغت شاید روشه عملش دست جبرائیله اما برای این آقا از شاید به این که این رو هیچ کاره میدونه این به عنوان وسائق از جبرهی بنابراین چنین میشه می دیگه اون وقت میره پیش کسی تملق کنه میره اینجای گدهی ای کنه میره تبازع کنه برای اینکه این آقا مثلا به این مقام بده منزلتی بده پولی بده این حرفا دیگه از قاموس زندگیه ای برای مرترفت میشه به کی دلش بنده؟ شون خدای رحیم و ودود و شریم و غفور و عالم و قادر که تمام هستی در اختیاره خومه اگم که آقایی دارم دیگه دلم به کی بند باشه؟ برای چی بند باشه؟ برای چی به دیگری بند باشه؟ یه حالتی برای آدم پیدا میسید؟ یه کمالی پیدا می کنید وقت صورت اگر امیر المومن نفرم سوار شطور بسی و یابونهای و یابو علاق رو به طبیر من تیب کنی ارزش داره که ای رو به دست بیادی که همچین حالتی پیدا کنی که لایت جبن نه اهدون من این حالی پیدا شده. نی قرآن. ده قول استیلا رو خوده، کمال است درای خوده. قسم نه، این رو تند و سریع هم باید انجام بکنم. از مجرد یه به گویی که مضمون مجلسی نقل می‌کنه، در یه جا این رو نقل می‌کنه، در یه جای دیگه در بهار با تفصیل نقل می‌کنه. <تصفح> آیه <تصفح> <تصفح> <تصفح> حمزه سمادی میگه که دستی بچهی داشتم خود نه این دستی شکست بردم اینه که نه به طبیه من قرصه شکسته خیلی قایم خیلی خود اینو معاینه کرد به قول ما خیلی قرصه خوب اینجا بیشینیم تا برم لوازم اونو بیارم خوب مفته میخواستن جا بندازم میدونم به خود تخته های باریک باریک درست میکردم و نرخ میبستن و چلوار روش میبستن و نمیدونم زرچوبه میمالیدن و امثال اینا برم لوازم اونو بیارم این من ده خدا میره اتاق دیگه که لوازم چه برده بیاره ابی حمزه میگه من به حال این بچه دارم سو و یه دعای مفتاد از معصوم که به من یاد داده بود اون رو خوندم و اینجا نشسته بودم منتظر بودم بعد از هبشتر دقیقه دیگه اون آقای که از آمد و دست برچه گرفت و به خود اینجوری اینجوری کرد. از, از سیگسته نیست که خودش مثلا تویل کرد اشتباه کرده گفت اون دسته تو بوده ببینم اون دسته شده اجرد این چی شد؟ چطور شد؟ عوی حمزه گفت من گرم به حال این بچه سوق وضع این بچه من رو ناراحت کرد <تصفح> و یه دعای از معصوم من خبر داشتم زینول آبزین به من سوام و عالد. یاد داده بود من اون آرو رو خوندم خدای سوالات به نظرم شفاش داده حالا آره من اون دعا خیلی مفصل من اونها رو ندارم ولی این چند تا جمله رو ملاحظه رو که چه این آقای بزرگوار چه جوری میشه و دعایی را که حضرت بهش یاد داده چه نخواهد خواهد داشت. این جمله رو بخونید من یکی از دعاهایی که باهاش دیدم تو ای این همون جمله اولی است که عرض کردم ای ان انسعی لا یفلح و اجتهادی لا ینجح الا به معاملته خدای من اینو فهمیدم باورم اومده که سعی من به رستگاری نمیرسونه مرو و اجتهاد و کوشش من پیروز به قول نخواهد شد و به نتیجه نخواهد رسید مگه تو قومت پس خیلی کار میکنم خیلی مثلا میگم میدونم عقب فول ولی گیرم نمیاد تو کمک نکردی پس کمک او باید بود. خیلی زحمت میگیشم خیلی این مریض اینورو میبرم، اگه او نخواه نمیشه؟ نمیده پس بنابراین اینو من باور کردم که سعی لا یفله و اجتحادی لا ینجه الا به و انم مریدی بالخیر لا یقدر و علا انالتی الا به ازنه اونی که اراده کرده به من خیری برسونه نمیتواند به این نتیجه و به مطلوبش برسه مگر تو بخوایی که خیر از ناحیه ای به دست من برس همینو کلمه رو اگر باوردار که به یده کل خیر به کل لا به ید زیادتی و نقصی و نفعی و زردی قهران این چنین خواهد خب این یه جمله از همین دعایی که ابی حمزه یاد گرفته بود یه جمله دیدم اینه میگه یا خیرم مرجون ای کسی که بهترین شخصی هستی که به او میشه امید بست همه به دیگران امید دارن بهترین کسی که میشود به او امید باش تمام خیرها به دست اوست تمام قدرتها در اختیار اوست تمام نفعها از جانب اوست یا خیر مرجوب و یا اکرم مدعوب ای بهترین دعا شده ها و خونده شده ها هر کسی یکی صدا می برای کمکش ولی من تو رو صدا میزنم یا خیر مرجو و یا اکرم مدعو یا من از بی که بله یا من خجابهو مرفوع اون راجی خدای اون که به تو امیدواره هجاب رو از بین خودت و او بر میداری یعنی به تعبیر من حرفش رو گوش میکنی یا من خجابهو مرفوع و لراجی اسألو که انتمون علی من عطائک خدایا من از تو میخوام که به من عطا کنی بله به من عطا کنی ما تقر بهی اینی, اینی و من رجائه که ما تتمعنو بهی نفسی از چیزهایی که موجب اطمینان من باشد موجب روشنی چشم من باشد اینها رو به من عطا کنی و اینها رو میخوام اللهم مبله این شاید این جمله این, این من اشتباهی خودم یه حالا بعد میبینم یا رب انت ثقتی و رجاعی و سیدی و الهی و ذا با انی. ای خدایی که ثقه مورد ثقه من و ثقه اطمینان من به توست من به توست آقای من هستی اله و معبود من هستی تو زاب به دفاع از من می تو دفاع کننده از من هستی یعنی تو دشمنا رو باید برطرف کنی و دفاع کنی و زاب به و راحم و بی و المتکفل و فلم یبقا ایلا رجاء و هیچی دیگه برام نمونده فقط امیدم به تو قدیم اما منم تا علی خیلی سابقه داره که به من نمت کذاشتی تازگی نداره قدیم من منم تا علی ازمی شد به این که قدیم من منم تا علی خب قدرت جبله شاید نوشتم. ما شاید خدا شاید همونتی بد نوشتم خلاصه ما انا فیهل قدرت که علا این سیاقتلی یعنی به خدایا من را فورا از این گرفتگاری نجاف بده همونطوری که فورا گرفتارم کردی. دست بسید خوش میتونه اون شد بیه خدایا فورا میخوام نجافت بسید خب این بنده خدا برگشت رو دست خود رو دیگه کم سالمه خب این دقیق این حضمی شود به این که من این دستشت رو شد این من یه دعایی از من رای خودم زین و لابده سلام الله بلد بودم اینو خوندم قبل از اینکه این کلمه این و این آقا بگیر این من در خدای شیگسته برمیدرسیم یه سنیه های خیلی ناجنس بود او از شما ها این مثلا سهر ها بعید نیست سیر کرده بود. از شما شیعه ها اینا بلید نیست بعد ابی حمزه فرموت نه این دعا بود سیرک نه بود بود که مولای من به من یاد داده بود من منم دلمی شکست با حال این بچه این دعا رو کندم گفت به من این دعا رو یاد میدی گفت تو لایق بود این دعا نیستی لایق نیستی ای رو این میگی خلاصه و هم براز وقت شد بعد این بنده خدا رفت و برمید که تمام شد خیلو خوب به نظرم این مطلب خواتنه تیدا کرد در از این مطلب رو مظهوم مجلسی یه هم بعد میگه به حضرت صادق احس کردم اوی همیزه میگه به حضرت صادق حضرت کردم که همکه حادثه اتفاق افتاد مصرات میشنین فرمودیه کلمه فرمود فرمود به این که من اینجاها رو فقط دعا ار رضا دعای تو با رضای خدا موافق بود جور و با رضای خدا فص تو بعثی اسرع من این خدا راضی بود به این دعا این دعا سر با سرعت بیش از یک چشم به هم زدن مستجاب خب این حالی کسی که راجا پیدا کنه فقط امیدش او باشه انتظار همین هم هست این جزار همین مدلوم هستی خدا را در یک طرفت و در شرائطی که خودش مثلت میدانه دعاشو مستجاب کنه بنابراین هم که حالتی بر آدم میشه امیدم از همه جا بریده فقط دوم در این صورت لا یر جوانم احدا من کم الا رفت سعی کن این حالت به دست بیاد که اگر اومد پشت سرش کماتتی هست برای من و کماتتی هست برای هر کسی که پیدا خو خوشح و حال اون که پیدا نمیکنه اللهسلام. <تصفيق>